انسان زیبا و آینه مهر و دوستی شناخت انسان به کردار به عنوان پیکریابی اصل زیبایی از گرانگاخهای فرهنگ ایران است و برپایه این تجربه انسان از خودش است که آین مهر و دوستی پیدایش یاده است این تجربه سرچشمه یقین انسان به خودش بوده است سرچشمه یقین به اصالت خودش بوده است انسان زیباست هو, هو چهره است چرا؟ برای اون که همه دوست او باشند. و به او مهر بورزن زیبایی اصل کشش است ولی همچنین انسان زیباست تا همه چیزها و انسانها و طبیعت آینی زیبایی گوهر او باشند و او زیبایی گوهر خود را در همه چیزها در همه انسان ها در گیتی ببیند و بجوید و کشف کند و خواستار آن زیبایی ها باشد و به گیتی را دوست بدارد عشق و زیبایی با هم انبازان هر جایی زیبایی هست کشش هست و شوق و عشق و دوستی هست وقتی در همه انسان‌ها گنج زیبایی است وقتی در همه انسان‌ها گنج زیبایی پس همه به هم کشیده میشوند و به هم مهر میبرند. این است که باید از این یقین داشت که در همه انسان‌ها این زیبایی هست و ما باید آن را کشف کنیم همان واژه قشنگ که در اصل خشنگ است یعنی کشنده جاذب به معنای زیبایی و باشکوه هست خود واژه قشنگ معنای قشنگ کشش دارد خود واجه قشنگ معنای کشش داره به این همانیه قشنگ و زیبایی قشنگ و کشش اون زیباست به خود میکشد یعنی همه را آشق و دوست و مهرورز خود میسازد عاشق به زیبایی کشیده می شود چون گوهر و تینت او و فطرت او زیبا دوستی هست این معنای انسان زیباست جان انسان آتش جان هو فریان است این را بارها گفتم یعنی چی؟ یعنی خانه و جاگاه و معبد دوستی و زیبایی این فطرت جان در هر انسانش تبعیض ندارد یکی از زیباترین و پرمعناترین ترین اشعار در ادبیات ایرانی این ربایی خیام است که میگوید هرچند که رنگ و روی زیباست مرا چون لاله رخ و چو سر بالاست مرا معلوم نشد که در تربخانه خاک نقاش ازل است مرا این شعر اهمیت فوق العاده دارد چون که یک انسان به زیبایی خودش میبالد خود را زیبا میداند این فرهنگ ایران بوده هرچند که رنگ روی زیباست مرا چون لاله رخ و چون سر بالاست مرا معلوم نشد که در طلب خاک نقاش ازل چه آراست مرا البته آراستن که به رادنیتن باز می گردد. ا این ا اضافه می شود که پیش خیلی از آراستن. معنای چیز معنای زیبا ساختن داشت ولی معانی دیگرش نیز ناز دادن و حرکت دادن و به حرکت آوردنش خیام با نهایت دلیری و شفافیت خود را که انسان باشد زیبا میشناسد و خود را با رخسار لاله و قد سر می داند حالا رخ لاله چیست رخ لاله چیست نام دیگر لاله یون است یعنی مردم اما می گوهن که همان فریانه باشد که ما گفتیم این آتش جان است یعنی رخساره اصل زیبایی فری یعنی ارتا هست خوب ببینید در اینقدر شوهرای ما لاله به کار میبرن برای چی به کار میبرن البته لاله خودش این الال بوده است واجه که همون اعال باشد زن خودش. ولی کسی نمیداند چرا رخ را به لاله تشبیح میکنند و سرب نیز این همانی با ارتا دارد اسم دیگرش اردوج اردوج است اونگاه این پرسش را همین خیام با گفتن این حرف که هرچند که رنگ و روی زیباست مرا تون لال رخوت و سر بالاست اونگاه این پرسش را ترح می کند که چرا نقاش ازل مرا با این زیبایی در تربخانه خاک پراموش نکنید نمی گوید دنیای دنی در تربخانه خاک در گیتی که جای است آفرید این اینها پایهای سکولاریسم است آیا جواب این پرسش را خیام نمیدانستد که اینجا میگوید معلوم نشد یا خود را به تجاهل میزند سوالی طرح میکند که میخواهد دیگران متوجه این موضوع بشوند چون نویسنده نوروزنام، نوروزنامه که خود خیام باشد با مقاله‌ای که درباره روی نکو یعنی روی زیبا نوشته است میدانست است که چهره زیبا روی نیکو دلیل نیکبختی این جهان است این حرفای است که خود خیام بنویسد و میداند که دیدن روی نکو بر هر بیننده‌ای روز را خوشاست می‌کند و از روی نیکو شادی آید و هیچ شادی به آن نرسد و میداند که روی نیکو باران رحمت است که روزه معرفت را تازه میگرداند و درخت شوق را میشکوفاند و آیت حق است که حقیقت بر محققان عرضه می کند. پس میداند که آراستن انسان به زیبایی قایت هستیست چونکه این چیزها را که گفت اینها همه قایت هستی هستند تا ایجاد میداند که آراستان انسان بیزابایی قایت هستیست تا ایجاد عشق و مهر و دوستی کنند به قول سنائی با نکورویان گبران بوده در میخان مست با سیه رویان دین زهد ریایی چون کنم ترجیح می دهد که با نکورویان رویان گبران باشد یا به قول خاجو کرمانی از نکورویان هرانچه آید نکو باشد از نکورویان هرانچه آید نکو باشد ولی یار زیبا گر پاداری کند زیبا پود یا به قول سعدی در من این هست در من این هست یعنی من فترتم گوهرم این است که رمرا نیست در من این هست که صبرم زنهکورویان نیست از گل و لاله گریز است و ز گل رویان نیست من جلو خودم را نمیتوانم بگیرم و حافظ درست نیکی پیر مغان را در این میداند که توجه به مسی ما از باده ندارد ما بدمستان را از دیده اینه که مست شراب خوردیم و بر برزد شرع عمل کردیم به این نگاه نمی بلکه آنچه می, می، میکنیم یعنی مستی که در نظر او این همانی با راستی داشته است آنچه میکنیم به نظرش زیباست چون او زیبایی را در انسان می بیند نیکی پیر و مغان بین که چما بدمستان هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. اینجا جوانمردی. به چشم جوانمردی میبینم. و مولوی برخی افکار فلسفی را از درون سینه که دل هست پاک میکند و در چشمش چهره های زیبایی یه یوسفی نقش میبندد. در ادبیات ایران چهره زیبای یوسف جانشین چهره خرم یا زهره و پری زیبا میگردد که خدای ایران باشد از سینه پاک کردم افکار فلسفی را از سینه پاک کردم افکار فلسفی را در دیده جای کردم اشکال یوسفی را ما تعرض میکنیم ما میگوییم که آقا افکار و فلسفی را این چه مردی است که افکار و فلسفی را از سینهاش پاک میکند ما امروزه آشق افکار و فلسفی هستیم ولی فراموش میکنیم که افکار و فلسفی در اسلام چه که مترود بوده است جز یک مش سخنان خشک و بیروح نبود که از جان و خرد انسان از همون هوفری نترابیده بود چون وقتی اندیشه از آتش جان از همون هوفری شعله بکشد اون اندیشه میکشد جاذب است افکار فلسفی باید جذب کنند باید بکشند باید دنیا را به حرکت آورن، اون وقت فلسفی هستند اگر نه فلسفی که همه رو خشک و بیحال و بیرمق میگذارد فلسفی نیست اندیشه در فرهنگ ایران زنده است که جفت و انباز خرد ها بشود یعنی جفت و انباز یعنی عاشق خرد بشود عشق در خرد ایجاد کند پس خیام میدانست است که انسان چرا زیبا است و میدانست است که در ترابخانه خاک زیبایی برای آن است که همه انسانها را به مهر و دوستی به هم دیگر برانگیزد زیبایی که خیام از اون سخن میگوید همون زیبایی گوهر انسانی هست همون زیبایی که جمشید داشت است. جمشید در فرهنگ ایران نخستین تخمه انسانی بوده است. در فرهنگ ایران برعکس عدیان نوری نخستین انسان ندارن بلکه نخستین تخم انسان دارن از این تخم انسان است که جفت انسان میروید. این خیلی مهم است در این تخم, انس... تخم زن و مرد هر دوتا هستند با همند در یک تخم یعنی انبازن این در این کسی جمشید تخم نخستین تخمه انسان بوده است جمشید. نه کیو کیومرس کیومرس نخستین تخمه انسان در یزدانشناسی است نه در فرهنگ ایران این را برای خاطر که ما فرهنگ ایران را دقیقا بشناسیم باید این تمایز را بدهیم تا بدانیم فرهنگ ما از کجا شروع میشود از جمشید شروع میشود یا از کیومرس در, در یزدانشناسی زردوشتی صفت بنیادی جمشید چیست؟ جمشید سریره یعنی جمشید زیبا ولی این سریره یک معنای دیگر هم دارد چون که سریره اسم ارتا بود صفت ارتا بود خود ارتا بود یعنی جمشید پسر ارتا برزند از دید ما اینجور ترجمه میکنیم واجه سریره اگر به کتاب لغت نگریسته شود دیده می شود که همون واژه سر است که در ارپان متداول شده است. یعنی این زیبایی زیبایی سر انسان است. در کمون و فطرت انسان است. حالا این سریره گفتیم صفت اصلی ارتاح است. مثل که هوچهره که معنای زیبایی و نام دیگر گل بستان افروز که گل ارتا است در عربی سریره است البته اونا با ساد می نویسن ولی این با صاد و سین فرقی نمی کند این سریره گل بستان افروز گل ارتا پرورد است گل روز 19 همه ماه است که ارتا فرورد است پس بنابراین این ارتا که هوچهره نیز نامیده می شود خوب در چهره نگاه می کنیم چهره معنی مختلف دارد چون که چهره برای ما امروزه یعنی دیدن صورت یعنی صورت شکل و شمایل ولی این در دو دوتا معنی داشته یکی چهره ذات و گوهر و بن و تخم است و این چهره چیکار میکند؟ می کند تخم می روید پدیدار می شود اون چه, اون چه پدیدار شد با چهره یعنی ذات این همانی با صورت دارد معنا این همانی با صورت دارد این خیلی مهم است در فرهنگ ایران این اصل راسیست اصل آفرینش است. بنابراین به عبارت دیگر در این همین واجه چهره چهره می چهرد، چهره نیدن به عبارت دیگر ارتا یعنی اون انصر اولیه تحول مییابد و ظهره یا خرم میشود ظهره و خرم تحول ارتا هستند ما اینا رو دو شخص متفاوت میگیریم در صورتی که این تحول آن است زی... چه در گوهر انسان نادیدنی و ناگرفتنی است یعنی سر هست دیدنی و صورت و روی زیبا و نیکو می شود یعنی خرم یا زهره می شود این است که جمشید سریره یعنی جم جم چید جمشید چهره و روی دیدنی ارتا یا سیمرخه این شید درست جای همین سریره را میگیرد گیرد خواهیم دید این اندیشه این اندیشه تحولیابی خدا یا فرن یا هوفری به زیبایی در انسان فراموش ساخته شده است. اینکه آتش جان به فرن آتش جان به فرن افتار نامیده میشه وه یعنی به فرن این اساساً این بادی بوده است که در خودش آتش دارد. فرن این باد جان افتار اوطاره بوده است این اوطار چیز تشخصیابیه اون فرهن به انسان یا به زیباش. یعنی تحول پیدا میکنه. این افتار بعدش در مثلا یک آبادیه هست افتری. همین. بعدش این کلمه افتاده است شده از فتره همین که فترته عربی شده است که این در اصل آغاز نبوده است بلکه این تحولیابی خدا به انسان بوده است که این فراموش شخص است این است که واجه فطرت یک تهماندهی از معنایی است که فراموش شده است این است که زیبایی انسان این زیبایی و عشق در همین هوفرن در این فرن که باد جان باشد این وای از هم اصل عشق از هم اصل است این است که در این ارتا یا هوفرن خودش هم اصل زیبایی و هم اصل مهر دوستیست. این خیلی مهم است این دوتا با هم یک جا هستند دو چیز متفاوت نیستن با هم پیوند دارن و این جفت بودن دو پدیده در فترت انسان با هم است که در عرفان بندی های بسیار زیبای یافت است از جمله بوسعید ابوالخیر میگوید گفتم که کرایی تو به دین زیبایی گفتا خود را یعنی به خودش گفت که من خودم یکتایی که من خودم همه این چیزا با همم. چی؟ هم عشقم هم آشق و هم معشوقم هم آینه جمال و هم بینایی و این اندیشه یک چونانچه پنداشته می شود یک اندیشه فراجهانی نیست بلکه این اندیشه درست بیان فترت زهشی یعنی فطرت ایمانند همه انسان ها و چیز این در همه چیزها این اصل این جفت با هم هست این است که معنای زندگی که خیام در رباعیاش طرح میکند هنجیدن یعنی آهنگیدن یعنی آهنگ به زیباش این واجه آهنگ خیلی مهم است در فرهنگ ایران اصل آهنگ رو به کار میبردن نه اراده کردن چون که آهنگ کشیده شدن از جان است آهنگ که همون هنگ و هنج باشد کششیست در انسان به سوی معنا و مقصد این کشیده می شود انسان فطرت انسان عهد بستن به تابعیت و تسلیم شدگی از خدایی نیست بلکه اصل زیبایی و عشق با هم است. این تفاوته فرهنگ ایران با اسلام است او آهنگ و کشش مهر به زیبایی ها در همین گیتی دارد چون که همه در همه این آینه همه آینه این زیبایی و مهر هستند. از همه این پیدایش پیدا میکند آینه ای نیست که انسان در آنها منعکس بکند انسان در دیدن در آنها درون آنها رو میبیند او خواستار زیبایی ها در سر همه انسان ها و چیز هاست. این معنای زندگی اوست در حالی که در ادیان نوری که الهی با اراده و مشیت همه را خلق میکند تنها اطاعت کردن از قایت و معنای وجود همه انسان ها تنها اطاعت کردن از او از این خدای با اراده و با قدرت قایت و معنای وجود هر انسانی هر چیزیست. این اطاعت و تابعیت از اراده مقتدر به همه چیز چیزها معنا میدهد. چون که به همه چیز قایت همه چیزها را مشخص میکند انسانی که خود را مخلوق و معلول اراده یا علالی یا شراعت خارجی می نیاز به معنا دارد. تا زندگی بی معنی خود رو با معنا کنه. این خیلی مهم است. ببینید از درد سر از همین جا شروع می شود. چرا؟ بیننان ادیان نوری پایه نیهیلیسم را می گذارن. معنا و ارزش و مراد و مقصد هستی مخلوق از اراده و قدرت خارجی معین می شود. امروزم میگن از شرایط از روابط ضروری هم عبدار تولیدی ایجاد می شود. این همون به جای خدا این گذاشته می شود. یعنی چی؟ بنیاد معنا و قایت از هستی خودش نمی جوشد و فران نمی, بفران نمی این نهیلیسم این نیلیس در همه مؤمنان در همه بعدیان نوری و همه معتقدین به ایدئالیست ایدا ایدئالیست ایدالی مختلف وجود و حضور دارد و همیشه احساس شدید بی‌معنایی می‌کنند و در چسبیدن به آموزه‌های دینی یا ایدولوژی در تعصب از تعصب در چمی جو پیدا می‌شود چون این احساس بی‌معنایی فوق العاده زیاد می‌شود و این خیال میکنه هرچه بیشتر خود را به اون بچسباند زندگیش معنا پیدا میکنه. ت... تعصب در این دلبستگی و تابعیت سر این باید با این تابعیت سر این بی معنایی را از خودش حذف کند. این... اینها داروی تسلیت این بی معنایی هستی خود را میکند. این نهلسم است چون معنا چیز دادنی به زندگی نیست. بلکه باید در بون، در چهره یه خود زندگی چهره به معنای چیتره به معنای مبدل در آتش جان باشد معنای زندگی شیره خود زندگی است که باید در خود زندگی کش شود و از خود زندگی بجوشد. چیز چیز بیمعنا با قرض گرفتن معنا یا دادن معنا از خارج به آن هیچگاه با معنا نمی شود دردسر دسر همه این ادیان نوری همین است در دسر همه ای ها همین است بنابراین جمشید که بونه همه انسان ها می باشد تشخصیابی و یابی خود ارتا خود فرن یا پری پریانه هست این اندیشه در این همانی یافتن یا جفت و انباز بودن جمشید و خورشید، در ادبیات ایران باقی مانده است ما میپنداریم وقتی این جمشید و خورشید در این اشعار میاد میپنداریم به خاطر قافیه یا زیباسازی شعر است ولی این به خاطر آن است که جمشید تهبلیابی ارتا یا سیمرغ یا خورشید بود جمشید خورشید این خورشید زیبا بود این خورشید زیبا بود که تحول به جمشید زیبا به انسان زیبا یافته بود چرا این شید که معنای روشنی میگن دارن معنای زیبایی و کشش، کشش، کشندگی دارد که خواهیم دید در قصیده عبید زاکان که من بارها آوردم خورشید سنم یا زن زیبایی است که در یک دست جام باده و در دست دیگر چنگ دارد چه برای زدن آهنگ درست نام همین زن خدا خورشید سیمرغ و آتشین است و در سغدی می تواندید که به روشنی خورشید خور عرت میگوین خور که همون خورشید باشد ارد که همون عرتا باشد رو... که روشنی خور باشه یعنی عرض این امانی با روشنی داده میشه یا اینی که روشنی خدا روشنی سیمر روشنی در جهانبینی ایرانی با زیبایی بدین ترتیب این امانی پیدا میکنن و از این رو روشنی خور یا روشنی جم خورشید جمشید جاذبه دارن کشندهاند به همین علت جم مانند خور جمشید و خورشید نامیده می شود. جمشید به زبان ما فرزند خورشید است چون که ما این ایده تحولیابی رو پراموش کردیم. ولی در اصل این خورشید است که صورت و چهره انسان را به خود داده است. در شاهنامه می آید من چند جا ابو می میآورم گواه بر این موضوع که شن بندگان با این موضوع اندکی آشنا بهشان در شاهنامه می آید که نیایش همیکرد کرد خورشید را چنان بوده بود راه جمشید را یعنی راه جمشید این بود که خورشید را نیایش کنند یا برو برنگاری جمشید را پرستنده پرستنده مرماه و خورشید این،, این که جمشید ما خورشید را میپرستید این در اثر همین بحث تحولی است که من گفتم یا جمشید را هنگام پرواز چنین میسرایت چو خورشید تابان میان هوا نشسته برو شاه فرمان رو حالا این فرمان رما چیز ما درست ترجمه همین واژه خشعت خشعته که اخشید یا همین شید شده باشد که این را ترجمه میکنند به فرمانربا و مولمی در غزلی میگوید آتش افکند در جهان جمشید از پس چهار پرده چون خورشید به گل جمشیدی میان خاک ناهیدی به گل اندود جمشیدی میان خاک ناهیدی ناهی درون اون دلق جمشیدی که گنج خاکدان درست در همان واژه سقدی که خورشید را خور ارت می نامه به خوبی می تواندید که ارت همان همون شید همون خشعته هست که هم معنای روشنی دارد و هم معنای قنا و هم معنای خوتای که خدای باشد که فردوسی به فرمانده ترجمه کرده است فرمان روا بنابراین این از این بحث‌های لغتی فقط من در هاشیه ذکر میکنم چون که اینها فوق‌العاده مهم است برای شناختن فرهنگ ایران تا ما با اینها آشنایی پیدا نکنیم ما نخواهیم توانست فلسفی خودمان را از سر بسازیم بنابراین انسان فطرتن روشن و غنی و خدا خوتای یعنی قائم به ذات است چون که جمشید چی بود؟ بونه همه انسان ها بود ولی چنانچه از همون خورشید خانم در قصیده عبید میتوان دید که ارتا یا مهر با زیبایی که دارد همه مردم را به خود جذب میکند اصلا نیاد به لشکر چیزی ندارد همه لشکر او میشوند برای خاطر این که زیبات زیباست جام در دست دارد و چنگ مینوازد این اینها نماینده نمادهای زیبایی بود این و این کشش روشنی آتشین اوتاشین او چرا ببینید این کشش ال... علت روشنی در پرهنگ ایران اینی که میگوییم خورشید روشنی ترجمه میکنن این علت از این است که ما معنای روشنی رو در پرهنگ ایران فراموش میکنیم روش... تابنده تابند... تابندگی و پرتو اینها همیشه روشنی در فرهنگ ایران از زمینه گرما تپ تب... تپ تب... تب... روشنی مهر است یعنی میکشد چرا تابش تابش از کلمه تب, تب از کلمه گرما است بنابراین ما در پرهنگ ایران در پرهنگ ایران روشنی رو همیشه با گرما گر، روشن، گر، روشنی گرم مسئله است برای این خاطر است که این روشنی کشنده است روشنی خورشید خشنگ و زیبا هوچهره است و از این رو میکشد گفتیم که قشنگ که خشنگ بوده است دارای همین پیشوند خشتهه هست و درست همین درست واژه اخشید که همین خشی باشد خشه باشد که به اونطور گفته میشود به معنای زیبایی و روشنی کشنده است در هر انصر این آخشیچا همدیگر را در اثر این زیبایی و روشنی میکشند. به همین علت فرمان روا و شاه و خدا را وجودی می که کشش و جاذبه داشته باشد و بدون زور و, زور و قهر و خشم مردم را دور خود جمع کند یا مردم را جذب کند حالا این تصویر انسان و این تصویر خدا و این تصویر سامانده اجتماع یا حکومت مترود ادیان بعدی و قدرت بعدی در ایران شد و از این رو زهاک بر ضد جمشید به یعنی بر ضد اصالت انسان اصالت مهری و اصالت زیبایی حالا و برادرش سپیتور او را به دو نیمه کرد حالا از خود میپرسیم که این سپیتور کیست ببینید ما را یک تحریف کردند ولی میشود به راحتی با شناخت ها و فرهنگ ایران به اینها پی برد این سپیتور برادر او نیست بلکه خواهر او زهره یا خرم یا بیدخت است چرا؟ چون سپید اوره ره او ره که بعدش همون وره ایر ما امروز یعنی ور و بر شده است که سینه و پستان باشد سپید یعنی سفید معنای پستان سفید است و این زن خدای عشق و شیر است که پستان سپید است یعنی همین زهره همین بام بام کلمه بام بام معناش هم پستان است هم زن خدای عشق است این و سپید است حالا دشمنان این تصویر انسان دست خودشون رو نخواستن به خون آلیده کنن چون در فرهنگ ایران جان مقدس است بدن سان درستن خدای عشق و زیبایی را که فطرت همین خود جمشید است قاتل جمشید ساخت. یعنی عشق و دوستی و مهر با فسرت انسان نمیسازد و در جنگ است و دشمن اوست و همون هوا و هواس نفس است که انسان را نابود می سازد. در سخنرانی بعد به طور گسترده به این موضوع خواهم پرداخت که چگونه عشق و مهر و زیبایی زن خدای عشق دشمن شماره یک و قاتل شماره یکه انسان می‌شود